زوری من بسم لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَفِع به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است کسی درخواست عذابی کرد که واقع شدنی است حالان که برای اهل کفر کسی نمی تواند آن را دفت کند آن هم در برابر خداوندی که صاحب جایگاهی بلند است فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند، در روزی که مدتش پنجاه هزار ساله است پس صبری زیبا پیشه کن آنها آن روز را دور می دانند و ما آن را نزدیک می بینیم. روزی که آسمان چون فلز گداخته شود و پوها چون پشم زده کردند هیچ دوست سمیمی از حال دوستش نپرسد حالان که یک دیگر را در برابر هم میبینن عذاب آن روز چنان خواهد بود که گناهکار دوست دارد فرزندان خود را فدای خود کند همسرش و برادرش را و قبیلش از او حمایت میکردند و حتی تمام مردم زمین را فدا کند تا خود را نجات درد هرگز اینچانی نیست آن شعله محیابست شعلهی که پوست سر را میکند. آن شعله هر کس را که به خدا پشت کرده و از حق روی برگردانده است صدا میزند. و نیز کسانی را که سروت ها جمع کرده و اندوخته حقیقتا انسان هریس و طاقت آفریده شده است شد. هرگاه شری به رسد بیقراری می کند و هرگاه خیری به او عطا شود بخیل می شبد إلا دید معلوم مگر نمازگزاران همان کسانی که بر نمازشان مداومت دارند همان کسانی که در اموالشان حق معلوم است برای نیازمندان و محرومان همان کسانی که روز قیامت را باور دارند همان کسانی که از مجازات پروردگارشان بیم ناکند. زیرا خود را از عذاب پروردگارشان در امان نمیدانند همان کسانی که از پاک دامنیشان مراقبت مراقبت می‌نماید مگر با همسرانشان یا کنیزانشان که در این صورت ملامت نخواهند شد و آنان که جزین را بجوگند تجاوزکارند همان کسی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت میکنند کسانی که همواره شهادتهایشان را به حق ادا میکنند همان کسانی که مراقب نمازهایشان هستند همشان در بهشت گرامی میباشند از چه روست که کافران به شتاب نزد تو می آین. از طرف راست و چپ آن هم گروه گروه آیا تمع کردند که گز از آنها را هم وارد بهشت پر نعمت کنند هرگز چنین نشود ما آنها را از آن که خودشان میدانند آفریدی. آفریدیم سوگن به پروردگار مشقه و مغرب ها ما تواناییم که جای آنها را به مردمی بهتر از آنها بدهیم، و ما هرگز آجز نخواهیم شد اکنون راهایشان کن تا در اوهان خود فرو روند و سرگرم باشند تا زمانی که روز ملاقاتی را که به آنها وعده داده شده ببینند همان روزی که با شتاب از قبرها خارج می شوند گویی به سوی هایشان شتابانند چشم وحشت زده است و ذلت سرابهایشان را فرا گرفته است این همان روزی است که به آنها بعد داده شده بود خاشعتاً ابصارهم ترحقهم دلت ذلک اليوم الذی کانو یوعدون خداوند بلند مرتبه بود از این از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و, علیه و